بگو اگر در نزد خدا سرای بازپسین یک سر به شما اختصاص دارد نه دیگر مردم پس اگر راست میگویید آرزوی مرگ کنید